تا دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روزه بهتر بلک هواداره ته چون بلدی بخندیم و چشم دل به با اش دل ببندیم <متصفح> اشوا که دل به چی هیچیه توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا نجواه که قلب سبز پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا سلام علیکم خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ چیکارا کارا میکنین؟ آقا من الان باید چی بگم اینجا؟ این بخش از برنامه ما امروز هیچ اطلاعی ندارم جلال کو تهیه کننده برنامه امروز ب... جلال سعیدی تهیه کننده برنامه است من هیچ اختیاری از خودم ندارم هر اشتباهی تو این برنامه به چه تقصیر جلاله به من هیچ ربطی ندارم گفته باشم خود خب چه خبر احوالا چیکارا میکنین همه چی ردیفه دومین روز از دهه مبارک فجرتون خوش میگذره هنوز مبارکه فقط تو خود مواظب باشین این انفجار نور خطرناکه این تا حالا خیلی اوقات نوخوی ناقص کرده گفته باشم همین کنار وایسین زیاد تو این ایام مبارک وسط مجلسا نری اما امروز آخرین روزیه که میخوایم در مورد قلدری و زورگویی حرف بزنیم و میخوایم بریم سری بزنیم به معدنش و ببینیم در دنیای سیاست و حکومت و نهادهای قدرت این زورگویی به چه شکل‌هایی اتفاق میفته البته فرصت نیست و واقعاً بعید ما توی یک برنامه بتونیم حق مطلب رو ادا کنیم ولی خب تا جایی که برسیم با هم به پدیده قلچماقی در این عرصه می‌پردازیم. پس دو تا سلام هم چون داریم امروز. اولین سلام خدمت همه عزیزانی که در شورای نگهبان مثل یک سد ناپذیر در برابر اراده و خواست مردم ایستادن و پاپس از دومین سلام خدمت بر های گروه فشار و خودسر و بسیج و پلیس هیچگاه ذره ای در فرود آوردن چماق‌هاشون روی ملاج مردم و این پس کردن اسپری فلفلشون تو حلق و چش ملت تردید به خودشون راه ندادن و سومین سلام هم خدمت قهرمانان ارسه‌ی ارشاد یا همون گشت ارشاد که پنجه در پنجه بدحجابان و کم حجابان و شل حجابان دارن نوامیس این مملکت با زور به راه رأ صداयत میکنن خسته نباشید جمیعان شاهد بوده که روزولت اومد تهران با پای خودش از هواپیما اومد پایین بسیار آدم نابینای بوده مثلا ایشون چون روزولت به خاطر بیماری پولیو از 1924 روی ویلچر میشسته با هم تو هواپیماش اومد به ایران از هواپیما با ویلچر آوردنش پایین عجیبه بله. نمیدید این صحنه رو با پای خودش اومد پایین حالا دیگه یه چیزی گفتن که چیزی گفته باشن حالا سخت نگیرین شما شاید در اون لحظه از برکت وجود قدسی امام مثلا یک هو شفا گرفته بودن ما چه میدونیم آخه امام کراماتی داشت که به مرور همچنان کم کم ای هر سال داره روشن میشه این کرامات بله شش زده هوای و رو هم چله همش هوا اپری و بارونیه دمای 20 خیلی حال استخر و, و خب خدا رو شکر بالاخره این آه سینه سوخته من اثر کرد یه آه دیگه بکشم همون بارون هم تبدیل به برف میشه. این پدیده نینو نیست، عزیز من این پدیده الفرشه بترسیین بترسیین از آه من بترسین اما حالا که صحبت از برف شد بعد بگم که از امروز دوباره یه توده هوای سرد و برفیت شمال غرب وارد ایران شده و احتمالاً دیگه تا نزدیکی های گیلان هم رسیده باشه و به زودی بیشتر مناطق کشور رو در بر میگیره. بر همین از فردا ما در نواحی غربی و شمال غربی و مناطق کوهستانی، و عصر بارش برف و در باقی نواهی بارون و البته وزش باد رو خواهیم داشت. بخصوص شدت این بادها تو خلیج فارس و دریای خزر به قدری که سازمان هواشناسی توصیه کرده این روزا قایق‌های کوچیک‌تر به دریا نرن یا اگرم هم میرن همراه با بزرگترشون برن دستشونام ول نکنن که موجی چیزی بیاد ببرتشون. دیگه خلاصه وظیفه ما بود اطلاع رسانی کنیم. دیگه خودتون میدونیم او یس اما این روزا سردار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه که چند روز پیشم نشان فتح یک رو که بالاترین نشان و مدال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 و قطعا نماهندگان محترم مجلس نگرانتر از ما باید باشند الان دشمنان انقلاب اسلامی از امریکا و سیگیون اسلام و کشورهای منطقه و حتی داخل کشور دنبال این هستند که شیطان بزرگی امریکا رو منتفی کنند دشمنی امریکا با انقلاب اسلامی رو منتفی کنند و جایگزین بکنند با کشور سخیف و کوچکی مثل عربستان این که نباید صورت بگیرید نباید مرگ بر امریکا بباد مرگ بر آمریکا، بله الکی نیست که یه شیطان بزرگی آمریکا رو منتفی کننش بره که آقایون نماینده این شیطان بزرگ سهم منه حق منه عشق منه شیطان بزرگ نبود من این مدال فتح یک رو چجوری میگرفتم آخه کدوم آدم عاقلی میاد و دشمنی با شیطان بزرگ رو بیخیال بشه جاش با یک کشور کوچیک مثل عربستان دشمنی کنه پس فردا برای آقا عف نداره بخواد جای شیطان بزرگ و آمریکای جهانخوار و اینا بیاد گیر بده عربستان سعودی بسیرت داشته باشین خب دیگه لطفا اونایی هم که دنبال اینجور روابط و تنش زدائی از رابطه با آمریکا هستن نیان تو مجلس مرسی اه به زور متوسرشم که این فسقه که واسها میخود دا بیاری فرشییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی! نهیدم نه <تصفح> <تصفح> بو تشکر از شما خوهر می و محترم به ازتز... ازت... ازت... ازت... بهزت... میره ساند که انجا مساقل پشت پردهی در جلیان است که بنده به زودی در بلدی اون افشاگری هم نمود بو تشکر نگده ببین تو رو خدا این جقل هم دیگه بر ما شد شده چی بگم بردم خب دوستان عزیزان خانوم ها و آقایان حتما همه شما با کاربرد, ج... کاربرد جاروبرگی آشنا این دیگه رو که میدونین دیگه اصلا اسمش روشه دیگه برای جارو کردن نظافت پاکیزگی و این حرف هست جاروبرگی دیگه همه اکثران تو خونهشون داره اما دیروز یه خبری رو من اصلا نگاه هم نه تنها به جاروبرقی که به کل جهان عوض شد اصلا نمیدونم چه بگم براتون نمیدونم از کجا شروع کنم حالا میگم دیگه یه جوری ظاهرا یک آقایی بوده توی عربستان به جاروبرقی شونم خیلی ببخشید خیلی مظرت میخوام با اجازتون دیگه شب بخیر میگفته به جاروبرقی خونه و به خاطر همینم خب همسرش ازش شکایت کرده و به هزار ضرب شلاق محکوم شده فکن آخه آدم چطوری میتونه به جاروبرگی گرایش داشته باشه بعد تازه رابطه هم باش برقرار کنه به شب خیر بگه خیلی عجیبه ها فروشگاه لوازم خونگی برای چنین آدمی احتمالا حکم مثلا استریپ گلاب دارن دیگه فکر از بین این ردیف های جاروبرگی که رد میشده چه حالی میکرده تن یعنی بیچاره زنش واقعا بیچاره فکر شوهرت بل شب بخیر گفتن جاروبرقی رو به تو ترجیب بده آقا صداشو پخش نکن زشت بده مردم حالی به حالی میشن یعنی اون آقاه خلاصه گاهی میدونین با چیزای عجیب غریب یادم برخورد میکنه تو این اخبار واقعا به کجا داریم میریم ما واقعا حالا خانمای عزیز تو رو خدا دیگه شما حساس نشین رو جاروبرقی ها تو رو خدا آقا مریض بوده بیمار بوده مشکل داشته من چه میدونم آخه ای بابا آلماایی خبر رو گفتیم از فردا دیگه یه جارو هم بزنیم خونه رو جای تشکر بعد نگاه های سنگین و معنادار همسرانمونم هم تحمل کنیم هیچ باید نیستا دیگه از فردا خااننمی چیزی همجا علکی بهونه کنن مثلا چه میدونم بگن صدای جارو برقی اذیتشون میکنه کلا جارو دستی و تی و این چیزا تو خونه جایگزیین جارو برگی بشه نمیدونم دیگه دی من که دیگه کلا دیگه ارزی ندارم با تشکر. مژده مجده فروش فقلاده انواع جاروبرگی در اولین فروشگاه تخصصی جاروبرقی آغاز شد. ما با تنوع رنگ و مدل در اولین حراج ویژه جاروبرگی به طور قطع پاسخگوی تمامی سلیغه ها و نیازهای خریداران محترم خود بوده و کیفیت محصولات خود را تضمین می نمایی. جاروهای کاملا بی صدا برای کسانی که نیاز به تمرکز و آرامش در هنگام استفاده از این وسیله را دارند جاروهای پرقدرت 2400 وات با قابلیت تمیز کنندگی، پاک کنندگی، براغ کنندگی و سایر کنندگی ها در سطح بسیار بالا. جاروهای فانتزی منقش به تصاویر زیبا و سفارشی به دلخواه شما جاروی سخنگو با قابلیت برنامه ریزی برای پخش صداهای دلخواه شما در هنگام استفاده و جاروبرغی با باتری داخلی که در هنگام قطع برق کار شما را نیمه تمام نگذارد به همراه ده مدل دیگر برای نیازها و سلیغهای مختلف فروشگاه تخصصی جاروبرقی جاروکاران در خدمت مردم من جزوه یکی از اکشار آسیب پذیر این جامعه در ایران آفرق. هستم و به شدت زیر بار زور هستم پنده به عنوانی که زلیل خود افتخار میکنم بل. چون لبل های دیگه هم هستم اونجور که میدونی زن شهید هست زن حلیل هست جدیدن چند تا از بچه ها زن مفقود و لسر و پنده به زیزی بودن خودم افتخار میکنم زیزی کبیر هستم از تهران <تصفح> زن ذلیل شنیده بودیم ولی دیگه این زن شهید و زن علیل و زن مفقود الاثر در نوع خودش دیگه تازه بود. حالا بعد از البته جاروبرقی که صحبتش رفت. به هر حال اینا هم نشانهایی هستن که بعضی از آقایون به خودشون میدن دیگه. بله ما دخالتی نمی‌کنیم واقعا. خیلی متشکرم. و ما بریم سراغ برنامه 977 رادیو پاس فردا که امروز سه‌شنبه 13 بهمن 94 داره تقدیم شما میشه یک تکرار برنامه میشنون چهارشنبه 14 بهمن میشنون هم که دانلود میکنن میشنون هر موقعی از سال ممکنه بشنون این برنامه زورگویی و قلدری معابی در سیاست ایران سیاست با طعم چوماق و, و اسپری فلفل و رد صلاحیت یا میگه شماره گه 977 بدانید و آگاه باشید که برای بعضی از نظام ها، زورگویی و زور زدن یکی از ویژگی هایی است که اگر آن را از آنها بگیرند مسئولینش فکر می کنند یک جایی از نظامشان نشتی دارد یا یک جایی از بدن خودشان کت شده است. پس بر ماست که بدون اینکه رؤیاهای خودمان را در مورد اصلاح یک همچین نظام هایی از دست بدهیم در جریان باشیم که بهتر است خیلی روی این تغییرها حساب نکنیم که اگر هم بکنیم فرقی نمی کند و ما در هر صورت از مورد زورزنی قرار گیرندگانیم امزاو از فرت زوریده شدن از چندین ناحیه زورانده شده های رادیو پس بر. Let's go. بیا وسط آه. چرا؟ عرض میکنم چرا؟ الان عرض میکنم خدمت بعد 13 درحمن تولد آرطای عزیزه بهش تولدش تبریک میگم با اینکه نیست این برنامه مدت هاست که از وجودش بیبهره این ولی با وجود نبودنش برامون عزیزه اینو خواستم بگم که بدونید همه شماهایی که این برنامه رو به برای ما می‌سازین برامون ارزشمند هستید و آرزو میکنیم که بدون همیشه سالم باشه و از وجود نازنینتون بهره بگیریم. امیدوارم فرشته منافی با وجود اینکه آدم خیلی زورگویه ولی آدم خوبیه، پخش بکونه یا صداره تا به گوش آسا برسونه. همه تون لیلا هستم از سوئد. لیلا از سوئد خیلی ممنونم از تماست. آرتا همینجاست سلام علیکم تولدت مبارک من بر میگردم اصلا چیزی نیست حالا که اینجوری الان برگشم آرتا همین الان از در اومد تو خیلی اتفاقی با یه بشقاب پر از کیک بله دوش جان و حالا میان بیرون من بعدو برنامه با. میخوام به من فکر نمیکنم برسه بچه ها انقدر زیادتن ما شاء الله میذانن می دیگه من هستم دیگه یه در فاس شده در فاس شده دیگه من دیگه بچه ها برین دیگه برین کیک تینو الان بچه‌ها میخوان یه کل براش بکشن یه کل برین خیلی مبارک تولده سلامت مرسی. بشی خوب بشی ممنون حالا یه تولد جشن ممنون. تولد هم بگیر بیام یه غیری بدیم برای بیایم بیایم بعد برنامه بریم قرار رو بدیم با با <تصفيق> چاکر خبارکه مرسی خورونت بعداتون هی هی هی هی دیگه چاغو آچار چرخ دیگه دموده شده الان کارت باید بکشی مثل مداهان عزیز بله به حق با شماست منت این جک و آچار چرخ و که ما گفتیم برای لولای معمولی مثلا درگیری پچ فرمونی بود دیروز که توضیح دادیم اینی که شما میگین برخورد در سطح بیترهبریه بالاخره عزیزانی که اونجا رفت آمد دارن فرق میکنن دیگه اولشکلت بله این هفته از شما سوال کرده بودیم به ما بگین تا حاله کسی بهتون زور گفته یا خودتون تا به حال به کسی زور گفتین گلدربازی و زورگویی به کسی با گلدربازی و زورگویی جایی کار خودتون رو پیش بردین یا نه و گفتیم از خاطرات زور خاطرات زور گفتنها و زور شنفتن ها شنفتن هاتون برامون بگید خب خیلیاتون هم, هم تماس گرفتید هم کامنت گذاشتید برامون بر وچه ها بگید از کامنت ها چه خبر؟ بله سلام سلام علیکم بوله. الی سلام بله خانم کجال دو 207 نه 201 مهسا بله. سلام. بله، سلام کن سلام منم هستم ندیدم متأسفم پوش رفتین شد ریز مرسای <تصفح> مقداری <و پشتات. تصفح> بله نوشتن که فرشید همین که هر وقت دلت میخواد میری تعطیلات و هر وقت میخوای تعطیل میکنی و هی ما رو هرس میدی و میگی کامنت بذاری و نمیخونی ظالمی و زورگو الان که فکر میکنم میفهمم کلی دیکتاتوری واسه خودت بله خیلی بله. ممنون حالا همه گیر دادن به دیکتاتوری الان من دعوا کامنت خودم بدم به صحبت ایشو والا اون تعطیلیا مال قبلا بود قدیما الان از وقتی ما دیگه از نیست بیست و سر ساعت سرشیم بله آقا فرشی همونقدر بله. هم زرگو نیست امروز هم خیلی مظلومه سلام میکنم دوباره بله, بله. جواب بو باش کنی فرشی بعد جا. برنامه شلو میرسیم خدمتت بله نه من میرسی بله تاراز میدله گفته فرجی جان دوران دبیرستان به زور مجبورمون میکردن ظهر نماز بخونیم وگرنه به بهمون نهار نمی دادن و دا بجاش کتک می خوردیم ما هم وقتی میخواستیم نیت کنیم میگفتیم 4 نک... رکعت نماز اجباری برای رضای آقای استواری میخونیم واجبا قربتا الالله آره الان به شما ظلم شده دوست من آره آخه اگه به ما نهار میدادن نماز شبم میخوندیم براشون <تصفيق> بله خانم مریم صادقی کامنت گذاشته بودن که بعضی زرگو هستن منطقشون اینه که هرکی رو بیشتر دوست دارم بیشتر زر بهش میگن دوست من فرق سرت میدونی کجاست دوست داشتن درست بخوره همونجا والا این بله الان اینو تو گفتی آره نه کامنت این خانم مریم صادقی و من یه وقتی کامنتو خوندم چند لحظه تعمل کردم خانم دقیقه از این دستم بعد یه ذره از آواجدان گرفتم یه لحظه بعد رفتم تو بطن داستان دیدم نه خیلی رازیم خیلی رازیم خیلی خوبه آقای حامد حقیقی گفتن حسن خمینی یه جوری از اوزا شاکی انگار با بزرگ من انایت کرده به مملکت خب پس خب بعضا از خنم به خودش گفته این روزا شاکی بازی رو بورس لابد و ته یه حسری چیزی داره عوضش مردم بیخیال عاییت پدرب که گران میشون میشن خیلی متشکرم خیلی ممنونم از کامنت های امروز. میکردین چی؟ تمام چیک ها رو میخواستی خودتون تنهایی بخورین؟ این همین الان آرتا اومد تو برا من اخ... به صورت اقتصاسی کیک آورده الان من وقت ندارم مخوام چیک بخورم هر کاری میخوایم بکنی خودتون بکنین موزیک برین نمیدونم الان چیه؟ هر کاری میخوایم بکنین بکنید من مخوام کیک ها دهنم بند الان جان الان باید روزها کنید آقای تایی راه ارتباطی رو بگم باشه دهن هم چیزه آفه تو کیکیه یه لحظه ایزه بده الیجان جان یه در رو راه های ارتباطی رو بگیر حال بیزن همه این بگیر از من من وقت ندارم میخوام کیک بخورم راه های ارتباطی رو بگیر خودتون بله راه های ارتباطی رادیو پس فردا ایمیل ما هست پس فردا, فردا دات کام و تلفن برنامه هست دو 22 و, دو 22 و دو 22 21 وایبر, واتساب, تلگرام ما هم هست دو ادامه بدم یا شد کیک خوبه دیگه من نمیدونم دیگه خود تامومش شد راه ارتباط دو بار <تصفح> دیگه میخوای تلگرام داریم و نمیدونم آره. از این چیزا فیسبوک داریم خیلی بله، چیزا خوبه دیگه داریم, داریم. بله توییتر داریم گوگل پلاس داریم ساوند کلاد داریم دیگه اپلیکیشن رادیو پس پردا هست بله دیگه کیکش هم خوشمزه تو آروم آروم بذار تو دستم از عشق بگو واسم تا تهش من هستم تو تو هستونه بچه که بودیم همه چیز زوری بود یعنی هرچی که چشممونو میگرفت و خوشمون میمد و میذاشتیم دهنمون سری مامان بابا میمدن تق تق میکردن میکفتن اخه تق کن ای حرفا. بعد هرچی که خودشون سلام میدونستن یا به قول خودشون به بود و قاشوق قاشوق میابردن میریختن تو حلقمون الان دقیقا رابطه شرای نگهبان با ما اینجوریه یعنی دم انتخابات چند تا کاندیدا میذارن جلومون میگن بیاین ملت به اینا رأی بدین اینا به غیر از اینا هم سمت هر کاندیدای دیگه بریم سری تخت کن تخ کن تخ تخ میکنن که توف کنیم وقت مریض نشیم هم برای اینکه دیگه جل دستمون نباشه حوس نکنیم یه وقت دوباره بریم سمتشون طرفو به کل رد صلاحیت میکنن یعنی اگه یه زمانی اون امام میگفت میزان رأی ملت است الان این امام میگه میزان رأی شورای نگهبان است جالبه ها بعد حرفم هم که بزنی آقا میاد میگه در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن والا به خدا توی کشورهای دیگه تمام احضاب مخالف حاکمیت بر خودشون حضب و تشکیلات و نماینده و برو و بیا و فلان دارن و شاید تنها ای که حرف آقا در موردش مستاق داشته باشه کشور دوست و برادر کره شمالی باشه به هر فعلا که اوضاع انتخابات تو ایران به همین شکل هست و دلمون بخواد نخواد همین جوریه بله آتیش بریم سراغ فری غریب فری برز غریب سلام چه خبرها خوبی؟ سلام آره خوبم سلام به همگی و خبر که این بازی های امروز که از... کلن خاصیتی نداشتی که مساوی شدن دیگه این پرسپولیس استقلال که مساوی شد دشواری مساوی برگزار شده امروز آره اتباقا میخواستم به همین اشاره کنم تو اصفهان استقلال تهران با زوبان هیچیت شد بدون گل اما تو ورزشگاه آزادی پرسپولیس و سفحان یه بازی داغ و به قول فوتبالی خونی عذاب در اومد خاشیه مهمش هم این بود که خلطپری محمد رضا که قبلا پیسوریس بود و از سپاهانه تو بازیه قبلی سپاهان که گرزد شادی گل خیلی بدی کرده بود که امروز هوه هوادارای پیسوریس مثل شی سوینا یعنی آره،, آره نه اونجوری که فرعون بود اگه اونجوری می‌جنگید. ها گفتی آخه خیلی نه بد نه بود من فکر آره. مثل شیز بود. خب ببخشید من معذب. نه نه لطیفتر بود بح. ولی کلی بهش امروز توهین و فحاشی کردن تماشاگرها که مجبور شدن برادرا میکروفون پخش زنده رو قطع کنن. عجب. خیلی خوب این از بازیای امروز از ب... نود دیشب چه خبر؟ آره، نوری دیشب فرشید جان علی دایی مصاحبه مفصل داشت با عادل فردوسی پور، از هر دنی سخنی و کلی خاطرات فوتبالی، اما جایی با اش اونجایی که به درد ما می‌خوره اونجا بود که صحبت از اون موقعی شد که علی دایی ممنول مصاحبه شده بود و حق نداشت در مورد فوتبال حرف بزنه. گوش بدیم به این صدا بعد من توضیح کوتا میدم. گوش کنین. کجای دنیای مربی و ممنول مصاحبه میکنه تن دیگه سن نمکنده شما دیدی موقعی که من به من میگن راده به فوتبال صحبت نکن مجبورم حاضر به رو نمیدونم هوا من سالا شما نگاه بکن آلودگی هوا رو من اون موقع صحبت کردم ببین چه آلودگی هوایی الان داریم آره متاسفانه هوا خیلی سرد بود با سردی میوزید و به نظام و تاموی خورده سردشون شده بود حتما باید لباس زمستونی بیارن و بیان که حتما لباس زمستونی بپوشن لباس های کلوف که سرما نخورن به نظام من خودم سرما خورد این دو بخش بود فری برسد حرفای علی دویی آره یه بخشش فرق میکرد درسته آره قسمت اولش همون جایی که صحبت از اون شلغن مورد علاقه هم به ما ما رو خود مصاحبه دیشب شب بود انگار الان ما رو گوش میده او تیکه آخرش هم معجوز بود به همون سه چهار سال پیش همون موقعی که ممنون مصاحبه بود خبرنگارا بعد از یه بازی ازش راجع به فوتبال سوال کرده بودن اون هم اونجوری جواب خبرنگارا رو داد راجع به آب و هوا حرف زده بود با مزه بود دیگه این نشون میده محرومیت خلاقیت میاره حتی اگه علیدایی باشی فریدورس خبر آخرم بده که پرونده ورزشی این هفته‌ام ببندیم و بریم میبندیم دو روز پیش فرشجان یادت تر روز یک شنبه در مورد تصادف دختر ملکوش ورادی ایران سارا عبدالملکی صحبت کردیم و حرفای مادرش رو پخش کردیم آره یادم چی شد در نهایت ولیروز امروز امروز خبر اومده تازه وزارت ورزش به خودش اومده و بعد از دو هفته رفتن بیمارستان دیدنش و قول کمک دادن به مادرش خب خدا رو شکر من شاید برنامه ما رو شنیدن تا زیادشون افتاده اصلاً ما هر وقت تو برناممون انتقادی کردیم به حال مسئولان سریع اقدام کردن دیگه خب خوشحالیم از این بابت حالا شاید هم جای دیگه‌م انتقاد آره. کردن ولی خب ما هم انتقاد کرده بودیم از این قضیه آره قبلن هم چند تا چند نمونه داشتیم از این مورد آره بابت. خوشحالیم که این اتفاق افتاده ممنونم ازت فریبرز عزیز باد خدافیزی میکنیم تا شنبه هفته آینده تا شنبه آینده خدا نگهدار همه چی <تصفيق> با سلام 26 اکسی شنبه شب را ضمن جلب توجه شما به انتخاب شدید وزیر خارجه بریتانیا به اقدامات ولادیمیر پوتین در سوریه با مروری بر علایم مهمترین خبرها آغاز می‌نماییم شکست دونالد ترامپ از علاقمندان حزب جمهوری‌خواه جمهوری ایالت متحده در اولین انتخابات درون حزبی حزب جمهوری‌خواه در ایالت آیووا و افصاویش و امیدواری ها برای ترامپ زده نشدن دنیا در انتهای سال جاری میلادی محکومیت ایران به یک میلیارد دلار جریمه به خاطر گرامفروشی گاز و نظر توده های مردمی که با ما فکر میکردیم اینا فقط ما رو سرکیسه میکنن تو نوگو گرانفروشی بین هم در دستور کالشینه و حشدار وزیر اطلاعات در مورد انتشار پنج میلیون سیدی سرشار از تهمت انتخاباتی و توصیه کابشناسان که حاجی شما بری خودت نیا رد اینجور کارا رو بگیشت به برابرچه خودتون برگرده؟ مهمترین اناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند اینک مشروح خبرها با همکابرم بلی بلی با سلام، مشاور شهردار منطقه بیست تهران گفت به منظور تامین نیاز دختران جوان به محیطی امن برای سپری کردن اوقات فراغت و فراهمسازی زمینه تفریحات سالم برای این یک کافی شاب مختص بانوان توسط شهرداری راهاندازی شده است و علاقه مندان میتوانند از این مجموعه فرهنگی استفاده نمایند بنابرای بزرش های رسی و طبق اظهارات یک شاهد محلی برای آسایش بانوان حاضر در این کافی شاب زنانه مسائل امنیتی به شکلی رعایت شده است که حتی اگر موش، گربه و یا کفتر نرهم به این کافی شاب نزدیک شوند یک آژیر در کلانتری محل به صدا در و نیروهای زده شورش با حضور به موقع خود این مورد مزکر را بازداشت کرده برای انجام بازپرسی های فنی به کلانتری منتقل می و در این کافی شاپ زنانه لیگ بافتنی به صورت لانگوشتی، مسابقه آرایی به صورت یک حسفی و بازی کی آقاشونو بیشتر دوست داره به صورت دورهای برگزار می شود. پایان محروح اخبار ای آقا یه میکروفون تلا این بازی چه؟ آخری چجوریه؟ ببین تو این بازی هر کی میگه شوهرش چقدر دوست داره بعد هیات داوران تشخیص میده شوهرش شوهرشو بیشتر دوست داره اینجوری. خب بعد چی میشه؟ برنده میره دور بعد دیگه تو نگران نباش برنده میشی هتفاً اینقدر دکتر دکتر میکنی بول بل واه <تصفيق> چرا حسودی میکنیم شما خب شما یه یک کاری کنیم خانومتون دوستتون داشته باشه واه. من که خودم ب... معبوب همه ی قلوبم هم بل, بل همه منو دوست دارن <تصفيق> ای اینجوری فکر میکنیم معلومه خوب باشه راحت باشین من برم واه. شب خور برو برو بخیر بابا برو به دکترت برس برو ای بله، ولی از طریق خطوط تلفن در خدمت کارشناسی امنیتی انتظامی اطلاعاتی برنامه جامعهای مشکل گوشها هستیم تا مشکلات ما را گوشویی کنند. بله. ای مشکل جان هستی شما. علیم. بله بله من بله بله. الان در مراسم توی نشان بودم دیگه. تمام شد. ضمن عرض سلام در خدمت شما هستم. ای بابا این روزا چه خبره؟ همه دارن هیچ نشون میدن، نشون میگیرن. چی شده؟ ببین دستورات های که در نظام مقدس جمهوری اسلامی دست می های باید یک جوری بالاخره قاعده دونی دیگه از اون خب خسته نباشید. خب چه خبر؟ مشکل فضای کشور داری؟ انتخاباتی میشه یواش یواش دیگه و ارجابی شما چی از این وضع؟ ارزیابی مامینه که فضای کشمر خیلی داره انتخاباتی میشه بحمدالله همین؟ این بود ارزیابی شما حرف خودم رو به خودم پس میدی؟ بله نگه. آقا مثلا این آقای رفسنجانی دیروز گفته بود این نگهبان صلاحیت بله. نداره حسن خمینی رو رد صلاحیت کنه بله این یعنی. بنده در جریان مم. این حرفایشون به گرفتم و به همین دلیل بود که الان در مغازه معاملات ملکی بودم برای پرسوجو معاملات ملکی بس. چه ربطی داره معاملات ملکی به حرفای آقای هاشمی آخیش خب ببینید اتفاقا خیلی ربط داره چون ما در وزارت همیشه به شورت پیش پیش یک سری مسائل رو از قبل پیش بینی می‌کنیم چی میگی با, با مشکل فارسی حرف بزن ما هم بفهمیم دیگه ای. بله ببینید عرض کنم خیلی آمیانش اینه که ارزیابی ما در وزارت اینه که آقای با این و که داره پیش میره سر کارش تو بعد از انتخابات به حسرو اینجور چیزها کشیده میشه دیگه اوه او جدی بل. خب این چه ربطی به معاملات ملکی داشت آخه خب دیگه بنده مأمور شدم که یک آپارتمان خب. در دنج و مرتم برای ایشان پیدا کنم تا ان در صورت خسر شدن دیگه قال به محل مورد نظر مراجع نمایید. آش اینطوریه یعنی ایشون هم دارن میرن قضیه حسیا دیگه کم کم. بله بار اول هر تاش نمی‌کنم مقامات بالای نظام بگیرن. ما مکلف و اجرا هستیم مشکل یه سوال این بالای نظام کجاست که مقاماتش این تصمیم را می میگیرن دقیقاً بالا کجا بالا خب بالاخره امه. بالای نظام همون که صلاح مملکت و نظام رو بهتر تشخیص میدن نه یعنی رهبر و اینا دیگه یعنی ببینید نظام ما همدل این قابلیت رو داره که خب. از جاهای مختلف نقشهای بالا رو ایفا کنه دیگه چی شد چی شد من نگیدم دقیقاً چی حالا اجازه بدید من پشت خطی دارم یک لحظه بابا ما دو آنتنیم داریم حرف می‌زنیم پشته خطی داره جواب می‌ده مشکل الو مشکل الو ای ام فامیلا چیکار کنم درود بر خامنه ای درود بر خامنه درود بر خامنه ای علی یعنی ازون بعد خطم مشکل تو صدای من میشوی وقتی از این شاء الله بدم علی درود بر خامنه ای بله دیگه ايش قبلی برای ما کم سرمایه نیست دیگه درود بر شما باشه باشه حالا چی بود مشکل باشه خط درود بر من باشه دیگه باشه بله این خب. آقا بو یک املوکیه بر بود یک دوخابه خوب حصر خور پسند پیدا کردن برای ما بنده میات برم یک بررسی بکنم ملکات به اجازه بله بله بله چه بساتی شده بله بابت تشکر از توجه شما تا شب دیگر و برنامه دیگر و مشکلی دیگر و حجری دیگر خداو نگم لطف دیگه. مرتبه تو تهران گشته ارشاد منو گرفته. اوه اوه. یه مرتبه تو رشت، بارها هم از دستشون در رفتم ولی بازم همونجور لباس بپوشم که دلم میخواد جنگ جنگ تا پیروزی. کاتیا هستم از رشت. آفرین. باریکل کل. درستشم هم همینه فقط کاتیا جان یه سوالی من پیش اومده. اینه که شما از رشت گفتی هستی. بعد چجوری 8 بار تو تهران گرفتنت فقط یه بار تو رشت؟ گشت ارشاد رشت دیگه. آره. سخت نمیگیرن شما رو در رو و محل استقرار و اینا رو بلدی چیه داستان؟ حال خیلی مر مرسی از تماستون دیگه همین فرمونو شما برو دارمت تیجان قربانتی بلا میستر سلام برسند جغالانه اما در مورد انقلاب اسلامی یه جمله خیلی معروفی هست که این روزام روی در و دیوار و رادیو تلویزیون و اینا زیاد میبینیم و میشنویم اون هم این بود که انقلاب ما انفجار نور بود ولی اگه تعارف و تشریفات رو کنار بذاریم واقعیت رو ببینیم میبینیم که در اصل انقلاب ما انفجار زور بود چون بعد از انقلاب همه چیز زوری و کتکی و فشاری شد و اولینش هم چی بود؟ اگه گفت حجاب دیگه بله هجاب بود همین دوستمونم هم اشاره کردم به هم گشته شد یعنی برادران و خواهران انقلابی تا یه مقدار روی صندلی قدرت مستقر شدند اومدن که کار فرهنگی بکنن و ارزشهای اسلامی و ایمانی رو در میان مردم نهادینه کنند و برای همین شعار زیبای یا توسری یا روسری مطرح شد و به این شکل اتر ایمان در جامعه پراکنده گردید که تا به امروز همین روش خب جواب داره استفاده میشه فرقش اینه که قدیم گشت سارالا بود الان شده گشت ارشاد که خب همه روز شاهد هستیم که در سطح محابر و خیابان ها به چه شکل به ارشاد زنان و دختران مشغول هستن که عزیزم، گلم، خانومم، بیا برو توی ون برو، برو والا یکی از قول های سیاسی حکومتی اینه که نه تنها ما خانما مجبور می‌کنن هجاب داشته باشیم، بلکه بعد کلن اونجوری که بهمون به میگن لباس بپوشیم. ابزار این قول ها معلومه دیگه دوستان عزیز گشت ارشادن. امروز سرای دوستم با گریه زنگ زد که میشه یه مانتو برام بیاری هفته تیر، گفتم وا اونجا که پرو مانتو فروشیه بوری که بخر خودت. گفت تو انگار نیست، نیستا من تو بن گشت ارشاد به مانتو برام بیار دختر. وقتی هفته دیدم یه ون گوشه میدون پارک کرده یه خانم جوانه چادر مشکی پوشم کنارش بایستده داشتم میرفتم ازش بپرسم دوست من اینجاست یا نه که خودش مد طرفم گفت خانمم فکر میکنی این روسری که سرت کردی رنگش مناسبه؟ گفتم بله گفت ندیگه یه لحظه با من تشریف بیارید اینجا تا براتون توضیح بدم گفتم نه ممنون من مثل دوستم که الان تو ونتونه ناشی نیستم بیام نزدیک در من بعد پولم بدین داخل بگین بشین اینجا تعهد بده و اینا اگه میشه این مانتو رو بدین دوستم تنش کنه بیاد بریم خونه مادر مریضش منتظرشه زمینگیره همین یه بچه رو داره ازش مراقبت کنه دختره بیچاره خول کرد زود رو فرستاد گفتم زمنا حواستون باشه که اون پیرزن کسی نبوده بذاره رو پیشونیش نماز اصرش غذا شده گناهش گردن شماست رئیسش از پیاده شد اونم یه دور مذارت خواهی کرد و ما که داشتیم میومدیم داشت دختر رو دعوا کرد حالی می ده رو بندازی بجون هما؟ همه دلنگرانی ما از آدمی آدمیست که می به چشم خود شاهد پیروزی باشد امران ملکپتی سلام بزن بریم تا وقت دست سلام فرشید جان سلام همگی فرشید جان امسال هم حاشیه‌ای جشنواره فیلم فجر بیشتر از خود اصل ماجرا است فیلم‌ها همچنان با تأخیر به نمایش در میان یا صدای فیلم‌ها خراب و قابل شنیدن نیست صرف بلیت فروشه بازاریان بیکار ننشستن الان بلیت‌های مهردار محتور جشنواره دونه پنجاه تا هشتاد هزار تومان بیرون کاخ جشنواره خرید و فروش میشه دیشبم که شبکه 4 حاشیه سازترین بود چون قرار بود حامد بهتاش ستاره اسکندری رویال نونهالی بازیگره فیلم میمشب اتفاق افتاد برنامه کارگردان فیلم تینا تو برنامه زنده نقد فیلم شرکت کنن که از حضورشون ممانعت به معلومه تایی کننده برنامه اعلام کرده به من رفتید نداره برید از مدیر گروه بپرسین حالا بعد مدیر گروه میگه من در جریان نیستم برید از تایی کننده بپرسید خلاص هیچ که این ماجرا رو گردن نمیگیره کار کی بوده فعلا معلوم نیست احتمالاً کار یکی که زورش زیادتر از این بود دیگه هر حال آره شاید هم اینقدر فروتن بروز نمیده که ریا نشه آره شاید فردا چه فیلمایی هم... نمایش داده میشه فیلم فیلمای همراه, همراه فرات ساخته فرشاد اقتصادی قیچی کریم لکزاده زاده در قبار محمدحسین مهدوییان عبد و یک روز سعید روستایی و هفت ماهگی حاتف علی مردانی فردا تو کاخ جشوارا به نمایش در میان. بسیار خب از موسیقی چه والا قرار بود کنسرت گروه آقای سما به سرپرستی امیروسین حسنی, حسنی نیا پنج شنبه جمعه تو خانه هنرمندان برگزار بشه امروز اعلام شده لقش شده اعلت هم اعلتش هم از طرف گروه ندادن مجبز از طرف اداره اماکن اعلام شده عجب. بسیار خوب ممنونم ازت کامران عزیز میریم حالا یکی از کارهای همین گروه آقای سما رو به اسم چرخان به اتفاق میشنویم با تو هم خداافظی می تا هفته آینده شنبه تا هفته آینده خوددا میگن بدان به که که بر شدی شدیو؟ گیریم بگیم به زور گفتن چی به ما میرسه؟ آبرورزی و خجالتش به ما میرسه بی دست و پایش به ما میرسه که زیر بار زور رفتیم تازه کی میاد حقمون از زورگو بگیره؟ خودتون آسینا رو بالا میزنین خودت بخاری ازت بلند میشه حقمون از زرگو بگیریم باشه ما گفتیم بگین بلکه یکم سبک شد نگفتیم بگین کی به تو که ما بیایم حقشو کف دستش بذاریم که ما خودمون حقمون کف دستمونه توقعاتی دارن ها بعضیه. بالا اما دوستان این سفر اروپایی شیخ حسن روحانی و حیات همراه تاموم شد اما هنوز هاشیه هاش تاموم نشده جالبه که تو خارج از ایران یه جور توی سر این سفر میزنن تو داخل ایران یه جور دیگه منتقدن بین المللی این سفر هنوز دست از سر کارتون پوش کردن مجسمه های برهنه ایتالیایی بر نداشتن منتقدن داخلی هم البته چند هستن بعضیشون مثل سردار نقدی معتقدن به سیاست اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبریشون در این سفر تجاوز شد بعضی دیگه میگن که به مقام شامخ رئیس جمهور ایران در این سفر توهین شد. چرا؟ چون وزیر خارجه فرانسه رفت فرودگاه استقبال شیخ حسن. گوش کنید از زبون آقای ظریف ماجرارو لطفاً. برخی دوستان برای تخضعه این به خاطر اینکه اهداف دیگری رو دنبال بکنن میان میگن رئیس جمهور را وزیر خارجه تحویل گرفت. بله رئیس جمهور رو وزیر خارجه تحویل گرفت. البته ایشون برای قانع کردن این منتقیدن تو همین سخنرانی گفتن که شما برید نگاه بکنید ببینید وقتی نخست وزیر هند رفت به فرانسه که تحویلش گرفت. برین ببینید وقتی آقای پوتین رفت به فرانسه که تحویلش گرفت. البته فکر نکنید منظورشون از تحویل گرفتن نخست وزیر هند و برادر پوتین اون تحویل گرفتن که ما میگیم ما میگیم چه میدونم سامی شهرامو تحویل گرفت. نه منظورشون استقباله. آقای ظریف در ادامه از خودمون مثال زدن که بابا مگه ما خودمون در مراسم استقبال رسمی قبل از مراسم استقبال در کاخ رئیس جمهور میره پیشواز کسی بله این بنده خدا آقای ظریفم خوب بد هرس میخوره ها تو پیشا برجام یه بار این نرسو جوجو از کمرشون زد بیرون این دفعه تو پسا برجام دیگه خدا میدونه کجا بزنه بیرون در هر صورت همه با هم خوبن همه هم تحویل میگیرن هیچ مشکلی نیست اقتصاد مقاومتی هم سر جاشه. مشکلی کدورتی دعوایی بزن بزنی بزن. بکش بکوب بکشی چیزی هم اگه هست ما خودمون مسئولیتش به عهده شما دست نزنید دوست باشید لطفا با هم دنیا دو, دو روز دیگه والا روزنامه روزنامه ای آرمان امروز از قول هاشمی رفسنجانی در مورد رد صلاحیت حسن خمینی تیتر زده بود که شخصیتی که اشبه به امام است تایید نشد. خب بابا شون کانریم حالا یه جورای شبیه به امام راهل قیافش دلیل نمیشه بره مجلس قبرگان که. روزنامه ابرار از قول رئیس مجلس امروز تیتر زده بود که امام تحولی بنیادین در فکر ملت ایران به وجود آورد. کاملاً صحیح است. امام باعث شد که کلاً فکر ملت ایران فقط معطوف به سیر کردن شکم بشه. زحمت کشیدن. ترین برنامه زنده این هفتم تموم شد تو روزگاری که هر کس زور بیشتری داشت ضعیفترها رو له میکنه بین تمام آدمهایی که به هزار و یک دلیل در مقابل ظلم فقط سکوت میکنن هستند زنا و مردایی که استوار و سربلند میستن و زیر بار هیچ حرف زوری نمیرن آدمهایی که حتی اگه جسمشون به بند کشیده بشه، افکارشون به دست هیچ قدرتی تو این دنیا به بند کشیدنی نیست. نازم حکمت شاعر ترک که سالهای زیادی از عمرش رو به جرم نوشتههاش در زندان سپری کرده جای گفته سرم را نه ظلم می تواند خم کند نه مرگ نه ترس سرم فقط برای بوسیدن دستهای تو خم می شود بزورد. خاکستری باشم بکش آتیش به تقدیرم منو سانسور نکن این بار میخوام رو سحنه بمیرم به پوش پوتین تو دیره بزن عقلم سر جاش برادر پای من گیره بکش دستات رو ماشه برای اهلم سازادی دوباره رو سپید باشی بذار تسبیح و تو تو پشت گرم باتومه بزن که خوهرم تنهاست بزن پرونده مختومه برای لمس آزادی تنم بجوری میخواه تمومه فکر و من فقط یه گل کم دار. Who's